ای همه شکل تو مطبوع و همه جای تو خوش دلم از اشوه شیرین شکرخای تو خوش همچ گلبرگ تری هست وجود تو لطیف همچه سرو چمن خولد سراپای تو خوش شیوه و ناز تو شیرین خط و خال تو ملی چشم و عبروی تو زیبا قد و بالای تو خوش هم گلستان خیالم ز تو نگار، هم مشام دلم از ظلف سمنسای تو خوش در ره عشق که از سید بلا نیست گذار کرده هم خاطر خود را به تمنای تو خوش شکر چشم تو چه گویم که بدان بیماری میکند درد مرا از رخ زیبای تو خوش در بیابان طلب گرچز هر سو خطریز میرود روید حافظ بیدل به تولای تو خوش